دنیا. بحث راجب کلمات مرحوم شیخ با عنوان تنهید در مباحث خودجیت اما ترس کرده شیط حتی مرحث قرط واقع اقتدارا با عنوان مقدمه مرحث خودجیت زن زکت بعد بعدها شد یک مختل مستقل و ارمان قبلت لحظه قرد هم ایشان دو تا مطلب رو به عنوان مقدم بیان پرمیدن یکیش وجود این حالات سلاس برای مکندف حالات سلاس برای که توضیحاتش داده شده در یک اعتراضات به صحب قول در این کسور برده شیخ هم آمده که مثلا دو تا حال اصفاد باشه مثلا یا قرط او زن معتبر بگیم یا غیر معتبر بیم این قرط او زن میشن بحثای اینجوری شده ادهی انجاب دارن مثلا این راهی رو که بعد ما شیخ رفتن اوفر به قواهر به اعتبار و بحثای این پیادای بحثای شما سر کردیم نقیه شما سر نکنیشون به نظر ما خیلی اون جمعه های علمی به ذهن ن در نها باشه به بست هم این از دکتری کیشون فهمدن. حکم واقعی یا هم از واقعی و ظاهری اون این تقسیم بندی این شاید مشکل پیدا می خب اون حکم ظاهری مرد نیست برای اینکه ملتظم بشین به حکم ظاهری اگر ملتظم به حکم ظاهری نشین که موظف مهمش در این ماراته در بعضی از موارد اصول عملیه مورد ذهن نمی‌شیم به مظاهرینی که مثل اسات و طهارت که تو بحث اصول نمییم در هم ما مورد ذهن مرو نمی‌شیم مگر میگروونه که مراد رو گفتن دیگه موردی نداره اینکه بگیم مراد گفتن واقعی اسات و روی این تصورات ما موردی نداره چون آقای مفصل بحث کرده من خیلی به دسته یک مطلب رو طبیعه از کردم که ایتون خیلی سرد وقت اینجا بشه مقدمه این دوبار می که معموم در حیرت فرمانه بودن به مجاری و اصول که ایشان مجاری و اصول رو در جواد و حکمینه چهار رو گرفتن و چهار اصل چون بعضی گفتن مجاری هستش در عربه درسته اما اصولی که جاری میشه بیش از چهار تاست. ممکنه جاری بشه شیخ هم مجاری و نمی جاری رو چهار تا گرفتن اصول جاری یکان یا در حالت حالت صادقه شده یا نشده اگر نشده شکل در تخییر برایت به مکلفون به دوار احتیاط احتیاطه و بایده میکنه احتیاط تخییر این خلاصه چهار اصلی که ایشون یه توضیحاتی حرض شد که یه تکتار نداره و ازا یکی دو نقطه دیگه اینجا مونده اینم ارزو که دیگه این تمام بشه بدیم در بحث پرسیشون تعرض کنیم اون مطلب اینه که از ظاهر اعتبارت شیخ چنین برمیاد که لحاظ در اینجا در لحاظ در شک لحاظ رو در استثام دیدن یعنی در براعت و احتیاط و تخلیم ایشون لحاظ رو ندیدن لحو زفیه حالت سابقه ایشون در اینجا فرموندن به این که با لحاظ حالت سابقه در بقیه لحاظ محرق نشوند این ظاهر عبارت شیف این است که در اون حصول سراسه لحاظ محرق نیست فقط در استطاع لحاظ ظاهرش اینطوره ظاهر عبارت شیف به الله تعالی علیه این طور. اون وقت برای اینکه این مطلب توصیح داده که چرا در استطاع لحاظ هست در اون سه اصل دیگه لحاظ نیست البته ارز من چرا نرز کردن؟ این سه اصل هم سه شم مرد کلامه این اصلی میتونی کار اصل و کیشون. در شباط حکمی جاری فرمودن هم چهار اصلش محل کلامه اما استصاب در شباط حکمیه محل کلامی که آن اخباری قبول نکرد براحت محل کلامه که آن اخبار قبول نکرد در و خود ما هم با آن اصل عملی قبول نکردیم احتیاط هم محل کلام یک توضیحش روز عرض میکنم تفکیرم که از, از آن اصولی ها قبول نکردن چون لاب و دیارت عقلیس می آن معنی داره اصلا تخییره اصل عملی قراره بلاتا انسان انجام می دیانی بوده راست دیگه او این نداره معنی داره که انسان مخیر بشه. از این چهاره اصلی که به عنوان اصول عملیه در احکام در کلمات محبوم شیخ و بعد ما ترخیران در حد چهارتاش محل اشتاره از اینطور اینست که صاف صاف باشه فیدا می این معنی ها فرح چون قدعی موافقند و قدعی مخالف به الله تحریرش نزد که زیادی در هده چهارتا مخالفت داره اصلا که حالا این چه نقطه است که در استصاب لحاظ گرفتن در بقیه نگرفتن دو احتمال داده میشه حالا احتمال خود من عرض میکنم تصالبتن که کلمات اصحاب هم یا شرار کلام و این بحث رو به این عنوان ندیدم یا اگر رو می دیدم ندیدم. یک احتمال این است که چون استثاب اصل محرزه این لحاظ رو به خاطر همون احراز چون فرقش با اشتغال اینه که اون اصول محرزی نیستن استثاب اصل محرزه چون احراز درش چه لذا لحاظ کرده حالت اصابه یعنی یا به که مرغوم ناینی ازش نارم کردن شیخ میگه در واوه استصحاب منکشف هر حماط کاشف نیست این منکشف بودن منکشف به خاطر همین لحاظ به خاطر اهراز پس شاید مراد از لحاظ حالت ثابته اینجا در خصوص استصحاب گفتن چون در شواطه هم یه جایی میشه به اصطلاح اینا به الا شاید مراد من شیخ این باشه که در کلیه اصول محرزه لحاظ هست در اصول غیر محرزه اصول غیر تنزیلی لحاظ وجود نداره شاید مارد این بچه من به شاید عرض میکنم چون این تقریب در این حوارات نمید احتمال اگر لفت داری اگر لفت کار شد لگه لفت کار شد خب خب همه دلخاط، دلله صحب موجود ها ابداع النفسی به اخوان نفسی؟ ها دل ابداع النفسی ها و الكشف، بیسه خالت و نفس. ابداعون للنفس، خالتون مشابهتون للیقین السابق، تصبف النفس موسوک ادن یقین، حسن اخوان اون یقین؟ لا، و ادفاقا موجود، خب خورمت داخل مرقب هم موجود به آیتون هل الآن بعد النقاط هل بقية الخرمة مرتفعة الآن حتى الآن الشمس طالح لأن الآن علمي نريد ندفع نقول الشمسي يقول إنه الآن طالح الآن قد يكون الآن طلمت وهذه الأشعى عجتنا يعني قد يكون ما ما ما سجب مع اليقين إذا فرضنا عنده قد يكون يقين ممتع لا مع فرض اليقين أنتوا اكتبوه مع فرض اليقين لا مع فرض اليقين ف... لا هو أكثر يقين من شاط الشمس باید میهد روزید داشت به اکتر و معجم شاقن از شمس قرص شمس خرجه خواده طول بار علایه که ماقام احتمال اول در کلمات شیف احتمالا این باشه که نظر ایشان این است که شون استثهاد جز و حصول محرز هست لذا درش لحاظ هست و این اختاث و حصول استثهاد رو نداره در رقی و حصول محرز هم لحاظ هست سوانم این استثحاب رو ایشون ذکر کردن چون استصحاب در شبات حکومه جاری میشه قاعده فراه و تجاوز داندن سوق موسیمون ید و اینها چون در شبات حکومه جاری میچن این قاعده در شبات حکومه یه جاری میچه و لذایشون در استثحاب احتمال دوم هم اینه که شاید مراد مرموم شیف حالا شاید جایی شیفی رو در, در استثحاب تفسیر داده باشه من هم تو ذهن می میکنم از می ارز نسبت بدم احتمال دومون شاد این باشه که مسئله لحاظ که این شاد از خلال عبارات مرمو استاد و ناینی هم در شرق تصریح نه چیز ملازمه در نکته نقطی دومی که اعتبار لحاظ به خاطر این است که استثاغ را از باب دلیل از باب تعبد و جنب میتونن یعنی به عبارت دیگر هر اصل اغلایی که هر اصلی که جاری میکنیم اگر جنبه اقلالی داشته باشه اون که به ما نداره توش لحاظ نمیخواه اون اصولی که تعبدی در اصول تعبدیه لحاظ باشه اما اگر ما مثلا در استسخاب گفتیم موجب به زن استسخاب از باب زن از باب اماریه خود جد دیگه اونجا لحاظ نمیخواه جای لحاظ نمیخواه سر این که لحاظ رو مرمو شیخ به کار برده اشارت به این که حجیت تعبودی دارد عرض کرد این سرال کلمات من اونهایی هم درمید پس در اون جاهایی که نقطه این نیست که بقیه حصول عملی ایش آقاداتی دارد نقطه اینه نقطه اساسی در حصول ها است که از باب تعبود حجته نه از باب حصول زن عرض کردم در باب استثاریه در است که عماره است، اون که زن به فقار داریم نگراي تعبد بنابر تعبد دها مطرح میشه اما اگه تعبد نباشه و اماریت داشته باشه دیگه دها مطرح نمیشه چرا جنور نباشه دها چرا باشه دها نه به خاطر اینکه اماریت دو جور تصویر داره در باره اسس ها یکی اینکه خود یقین یعنی به حدوث بر اثر گذشت زمان تبدیل میشه خودش چیزی دیگه نیست خود اون یقین کمتر تر کم میشه میشه زنده به بقا تو مرحله بقا تبدیل به زن میشه مثل خبر سقه نیست که شما به واقع برسونه خود اون یقینی که اول پیدا شد که شما دیدین مثلا دیروز بازه صحبت کردین امروز همون یقین یک کمی ضعیف میشه اگر یک سال بگیداره اون یقین زعیفتر میشه. همون صورت نفسی تیش فرما کرده ولی ازا نمیگیم یقینه به حدوث مسلزمه زن به بحاظ یقینه به حدوث همون زن به بحاظ فرما نکنه صحبت صحبت علمیت چون آمل زمان پیش آمده عامل زمان اون یقین رو کمرنگ کنه. اون یقینه کمرنگ یه سوی زمین پاس در این لحاظ نیمازه که اون چی جای لحاظ داره؟ من به یک سال پیش طرف باذه صحبت کردم یقینی داشتن در الان الانم شک میکنم طبعا چون یک سال گذشته و حوادث مختلفی و مثلا این شخص از طرف و این طرف و اون طرف چون بحث و اد فرق همون یقینی که من به خصوص داشتم اون تبدیل شده به زنه به رها یک درجه ظریف است همون رو فهم اگر این اینو قادر شیدگی لاحاطیش لازمیه اجازه اش نمیشه اگر میدیم یقین یعنی به حدوث به عینه متحول میشه به زن رو بغا. همون هیچ رو همه میسه همون یقین یعنی. همون صفت نفسانی حالا پرسیم با مثال اون ادراتی ما توسط حسط مشترک بودیم با مثال همون حسط مشترک هم بعد هیچ فرقی نبکنه همون ادرات همون مدرک همون مدرک تمام خصوصیات یکیه فقط در اول سن مستقیم و همونگاشر بود یقینی بود به توبت که را با زنده رویده یک سال گذشته همون یعنی کمرنگ اینکه در اسمی زنده و غا حالت زنده و حیاتش در این اسمشون ریزد پس اگه برابرین شدیم راه دو بگیم نه اینجور نیست که همون باشه اگر ما یقینه و دوست داشتیم مستلزم دو تا بگیم لازو مرزوم بگیم مستلزم زنده و غ این استلزام هم الان تقریب این که صادت باشه باید استلزام واقعی ده اعتباری که نیست استلزام واقعی است تا اعتباری نشود دیگه توشی لحاظ نیست لحاظ مال مقام اعتباره. بدون او حسولا لحاظ معنا نداره پس بنابراین شاید نظر مرمون شکل شاید این اقرب به اعتبار باشه بر این است که چون استلزام و جیلیتش به دلیل درش لحاظ هست اما اگر اماره باشه و با. دلیل و تعبد خاصی نباشه دیگه درش لحاظ وجود نداره این دوتا احتمال به ذهن ما رد گیره این دوتا احتمال دو با انتجام و انتجام بیشتر بسازه و اینم چون تازیگی مراجعه نداره حاضر شد من در بحثای شیفت و رسا <تصفيق> یک جنب اشاره توی استثماری ها غیره این مطلب باشه الان تو ذهن من نیست الان چیزی میتونه بگم آیا این مطلب درسته یا این مطلب درو تقدیرش تغییر بشه یعنی ضرر حساب درست حساب نمیکنه شه پس اونا هم اگر حساب میکنه پس مثلا ارجاحش به یک غلایی دیگه درش پس مثلا تعبدی نیست یا اگر ان تعبدی هست جنب اندهاد درش, درش نیست اگه انصافا مراد تحبوت باشه خب در اونجا هم تحبوت باشه باز لحاظ یعنی مه... من از اون احتمال اول احراس محفظ بودن شاید نقطه لحاظ محفظ بودن برحال شان من نمیتونم الان نسبت معیه میبین مرحوم شیف آقانی که بعد از ایشان آمدن اون چه که الان در کتب اصولی هست از فرمکنان جهان توضیح داده باشه الان من تو ذهنم نیست اشتباه نشه اون چه که الان ما در کتب و اصول می اینه. در استخاب لحاظی نوشتن در اون لحاظ لحاظی نوشتن خلاصه بحث حالا یا نکتهش نکته احراز بودن یا نکتهش نکته کاربردی میاد اونالا زمانه این واقعا چرا <pack> <Psychoted popular> تو سكه ها رو واخت لحاظ خودش. نیز. لحاظ نیست خودشه عمل نیست لحاظ نمیخواد. لحاظ نیست. لحاظ مال اعتبار، اعتبار نیست که. نمیخوام من لحاظ الان من میگه تو میگه تو شما وقتی یقین یعنی داشی هم یقین واقعی درجه زیر <سؤال> همشوشت همشوشت هم. از این از همونه یا همونه یا متخلزه میشه اینی که الان یک کسی بیاد به شما که خانه زهید بودن خب برای شما 90% زن پیدا میشه این هم که شما یک هفته پیش زهید رو دید. این همون رویتی یک هفته پیش باز 90% برای شما که زهید بودن هر دو 90% توی خبر سقه که لحاظ نیست که خبر شعنش طریقیتی به واقع مثل پل به واقع چی ها؟ خب استثمان بنابرای اون یقین یعنی مثل اخباره شعن اون یقین یعنی طریقیت به دیگه لحاج نمکنه یقین یعنی خود یقینه سابقه این ترسیل رو داره شرک که آمد بمیریز یه زیر زرده و در اینکر پیش بوده همونه میاره نگه بیدیم که من که نه چون لحاظ شما خبر باید لحاظ خب یک نحوه لحاظ توش داره شون سقه شون خبر آمده مون نگاه نمیخوین ببینیم چه شما خودتون احساس کنین در مقابل واقع در باب استفاضه هفته پیش زنده بود حالا میبینین زنده همون رؤیته فهمو نکرد اون رؤیت فقط واضح بود حالا این که ما چیزی که مستر در قبلاً یعنیم در طلاع شکلی مجبور است استطاع کنم نه نکنه نکنم اما سیره اغلا بر این جاری شده یه سیره عملی بحثن این که این سیره عملی رو بر اساس اماریت تفسیر بکنه یا بر اساس به اصطلاح اصل عملی ما این خلاصی فرق ما با آیون که لحاظ هست ولی اغلایی باشه این مطلب درسته که در ناله ها هست. اصل که مأور اجباری میدونه لذا باید لحاظ بکن حافظ صادق یعنی شک ترث یک کسی باید لحاظ بکن تا اجزا بکنه لا اجزا نشه بکنه ما عکن باقاعد میشه تو شفه حالا توضیح این مطلب قبلا این مطلب من چند بار مطلب عرض کردم اقوام اینا در تلمات خودشون چند بار فرمودن یک که توضیحه شد در این جلد 4 چاپ قدیم به استناد بحث اسسحاب یکی از اروال استثار شکل بین افکار وضعیه یا تکریفی یا ایشون در اونجا یک توضیحی راجع به این مطلب دادن یا های هم کرارن اشاره فرمدن خلاصه اینه که ما یه چیزی به نام انتظار داریم یه چیزی به نام اعتبار این دوتا از یه جهت با هم نزدیکن و اون که هر دوشون از مقوله ادراکات اعتباری اعتباری, اعتباری نفس, نفس اعتبار میکنه از یک جهاز دیگر یک حیطیتی در نظر گرسته میشه که این پیاسه به اون حیطیت میشه در این جهاز هم با هم شدید کنم در این هم با هم دارم بعضی الان در اصطلاحات هم در کتب معقول یا مقبول یا فقه یا اصول مخصم برد این که اصطلاحات فلسفی یا مده در اوقات احده همان مکان دیگری به کار برده میشه به فرق بکنیم انتظا مراد این است که ما یک شیعی رو که واقعی است از یک زاویه معیل نگاه بکنیم هیچ چیزی بو اضافه نمیشه ناستون بنده اینجا نشستن سخت بو سرم نه بنده که یه علب واقعی هم سخت و علب واقعی است که علب بهمی که نیست از این نسبتیش سخت رو من داره فوقیت نمیشه هیچ کار نمی کنیم هیچیزی نداره یعنی میان شخص رو با اون شخص در نظر میگیرین نبیدین شخص چیزی اضافه میشه نبیدین سخت چیزی اضافه میشه عنوان فوقیت این فوقیت هیچ کار نمیکنه. یا امکان را از ممکن انتظار می کنیم یا پس که مثلا یک فردی رو در نظر میگیرین بینیدین این فرد مثلا با یک فردیگی هر دوشون از یک فرد دنیا آمدن اسم این دیدین اخوبت یکی این برادر را کنیم چرا بدون این که یک مشترکی بینشون باشه معنا نداره فرصم مثلا اگر فرص مادر حضرت ایسا این با چون نبینام برگاتون مروح یا زن یوسف نجار زن یوسف نجار می مریم رو سلام بولو علیه اگر فرص یک بچه از یوسف نجار دسته خب برای حضرت ایسا شما برادر پدری یا عقبینی فرض نمی کنید مثلا فرصم مشترک نظره این نحوه انتظار مبناش اینه ولی در این طوره که شما یک امر رو در نظر می‌گیریم با یک امر دیگه مقایسه میکنه خوب جدا نمی‌کنه. هیچ شر اضافه نمیشه هر دو با حال خودش. این هم اصطلاحاً اگر گله انتظار، گاریه بینگن یعنی یکه اعتباره فوقی است. لكن انصاف قضیه اگر بنا در الفاظ دقیق ترشیم اسم هم رو انتظار بذاری باشن. با, با یه میشه امتظار از دو هم به ارتبالی بکنیم میشه اشکال نداریم دو تا امر مستقل رو نگاه میکنن مثلا میگن خوب وقت میگن خوب وقت بنووت امو عموم. حمومت خووله این یک امرو بساره بیموش اسمش انتظار یه دفعه همین کار میکنیم نفس ما افضاع میکنه اما در اینجا یه چیزی رو اضافه هم میکنه کسی رو دیگه اعتبا. اعتباری تصافن این یک اصطلاحه که مرعونهایی به کار میبره چند جا تذکر میده و درست هم هست اما در کتبی که الان می‌خونیم کتبی که الان در در هر دست کلیه در کلیه کتب در کلیه اونو معقول و منطق این دو تا اصطلاح گاغمی دیگه به کار برده شده. تسبیح این دیگه یکی انتظار یکی احتواب در انتظار چیزی اضافه نمیشیم یک چیز رو از یک زاویه بایی که دیگه در نظر میگیریم کنیم انتظار مثل فوقیت سب یا سب فوقه مثل اقوه مثل بنوه این رو اسمشه بداریم انتظار یه دفعیه شد که شما رو لحاظ می کنیم از ذاویه یقین ثابتتون ببینیم کسی این در یک جهتش با انتظار شریک شده یک امر رو به لحاظ یک امر دیگری نگاه کردیم لکن یه یک چیزی اضافه بکنیم میگیم این تو شکل برو این همون کار هست، ببینیم اینجا اضافه شد پس مثلا فرصه همین تکریف خود تکالیف و قوانین اعتبار هم. ما میعنیم زید در نظر میگیریم، فعل نماز خوندن در نظر میگیریم، فعل نماز خوندن نسبت به زید او رو در زنده او قرار میدیم اسمش میشه اعتب نماز همون یک چیز دیگه کس تص... یک اعتبار داریم یک دیگه داریم مثلا ملکیت ملکیت یه ملکیت تکمیلیه این تذیه درستون شما می یه در نظر می گیرین سلطه من در نظر درستون در نظر می گیرم اسمش ملکیت میگین مالکش مسلطه همین ملکیت قابل اعتباران هست دو تا ملکیت داریم یه ملکیت انتظاری یه ملکیت اعتباری بازم تکرار می کنم این اصطلاح رو چون میگن در حنه‌ی ها به این دقت مراعات نشده گویا بین اثر اعتبار مرادشون انتظار بین اثر ابتداه مراد رو به اعتبار. اگر این دو تا اصطلاح رو از هم جدا بکنیم خیلی کار دقیقی نیست به نظر من. تضییق انتظار داریم، یک اعتبار داریم. اینه که مرمون شهر در باب استثابی فرمد لحاظ لحاظ مرادش انتظار نیست مرادش اعتباه این که ایشون فرمود لوحه ده یعنی آمد شک که شما رو در نظر گرفت فرضی مثلا در غیر شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه میاد شک که شما رو در نظر میدید شما سر سجده برداشتی نمیدونه اول یا دوباره شک رو با این بعد سجده میگه اون یقینت احوال بکنی یقین داشته که تجدیدو من انجام ندی انجام بده چون شک در تجدیدو چه تجدید اول موقتاً و دوم از اثر عدم شه اما اگر در ورنکودی و رکوع رفتی در چون در بالا چون جایش نیست و حل تجاوز شده اون که قبل موقتاًی که از مرحله اوسه در رکوع رفی این شک رو میاد لحاظ میکنه با رکوع شما الان داریم شک میکنیم شک هست روکوع شما هم هست میاد یک اعتبار میکنه انتظاه صرف نیست اعتبارش اینه که آن تو, تو تجدر انجام دادی ببینی اونجا اعتبارش این شد که تجدر انجام ندادی اینجا اعتبارش این شد که تجدر انجام ندادی پس مثلا ملکیت ما یک ملکیت انتظائی داریم یک ملکیت اعتباری داریم این سیطره من وقتی این تصویر دست من هر کار میخوام باشی میکنم میگه مالکشه سکت مستهی تره داره فرسونی یک ام دارم توی عراق مثلا از من فرپنگ ها فاصله داره لکن تو هم این مالکشه این دوبومی اعتباری اون خونه رو با من در نظر بگن یه چیزی اضافه میفنن اگر اضافه کردن این میشه اعتبار اگر چیزی اضافه نشد این میشه انتظار اثر. پس در یک جهت با هم مشترکن این تا رو با هم لحاظ میکنن یک زاویه خاص رو نگاه میکنن نفس این صورت رو ابداع میکنن در اینجا با هم مشترکن یه دسته صورتی رو که نفس ابداع میکنه هیچ تأثیری نداره هیچ چیزی نداره مثل اقوقت و بنوقت و فوقیت و تحقیه توینا یه دسته نه اون صورتی که ابداع میکنه یک آثاری داره. مثلا میگه این انجام دادی اینن این تو بدرست برشتر تو مالک این خونه هستی در اینجا شما وقتی که ملکیت تکمیلی دارین این تصویه هست و دست شما و تقام است که شما تصویه رویی چی؟ اضافه نشده اسمشی بدرش ملکیت میگه تصویه در اختیار شماست ملک شماست مقدور شماست مستق... بسا مسخر شماست در اونجا درباره ملک اعتباری زمان. این نکسه روشن شد پرمیده این اعتبار و انتظام حالا اینجا دقت بکنید تو اصول عملیه لحاظ هست از که به نظر ما به توضیح گذشت گذاشت در تمام اقسام اصول عملیه اصلا قوام اصول عملیه به لحاظه و لحاظه هم ما هست نگردیم چون لحاظه توش نشد اصلا اصلا عملی قوامش به لحاظه به چه معنا میاد شک رو نگاه میکنه با یک ز با این ظاویه که سنجید حکم قرار میده این چه اعتبار؟ میاد شک شما رو به لحاظ یقین سابقتون میسنجه میگه اون یقین واقعیه نه در خبر واحد شما رو با واقع قرار میده بله در خبر واحد کسی که قاعده به تحبت بشه تحبت روانا جعل مماثل بوده بله ولی زا ما در امارات جعل نداریم چون ایشان در بحث حجیت کار روست که معنی حجیت چیه اگر معنی حجیت جل باشه بله اما معنی حجیت جل نیست اما در بابه اصول عملی این ببینید همین احتیاط رو یاد میکنم آقای مثلا احتیاط از در عملی غیرمحض لحاظ کن وقتی میاد میبین شما قصه خونی در یکی از این دو انا افتاد این شد که شما رو میاد لحاظ میکنه شیل رو لحاظ میکنه میگه آیا اون ن اون علم درک موجودی، موضوعی اگر علم موضوعی بود، نگاه کرد به با علم موضوعی میگه برایت جاید میشه <تصفيق> احتیال لازم علم موضوعی تمیشی یعنی تو با علم معلوم و البولیه ازشت اجتناب بکن معلوم و الملاحات که معلوم نیست یا اینه یا اونه اگر همون شکل خود دقیقه با علم موضوعی نگاه کرد میگه برایت هم شک رو فهمید علم فریعیت داریم میگه اختیار الان خب شما مطلبی میگه خب معروفه در بین اصولیین و فقهای معاصر ما اگر شکی در قدرت کردید مثلا شک در اینکه ها قدرت بر آب دارید یا ندارید ببین هر شک که در حالت یکی فرض میکنه میگه اگر که در قدرت داشتید دلیل قدرت دیدی دلیلش شرعی مجرای برابرت اگر دلیلش عقل و حکمه عقل به اعتبال قدرت مجرای احتیاط این شکه در قضرت یکیه شکه در قدرت که فرق نمیکنه میکنه اگر شک کردی قادر بر آب هستی یا قادر بر آب نیستی در اینجا باید احتیاط بکنه احتمال در آب کشتی این بیوار باشه احتمال آب ده مستی سر باشه میگن به قضرتون عقل باید احتیاط تو میگرید این آب هست یا نه؟ اما اگر شک کردی که آیا من پول دارم یا نه یه احتمال میدم که مثلا کسی فارسی من با مسئله من بری در آمریکا مرده باشه و این خامی دورم باشه من خبر داشتن اموالش رو بعد تو حساب من آیا لازمه من برم حساب نگاه کنم یا نه این چه حسابم من احتمالا قدرت داشته باشم مستطیع بشم بیام یه پول یه مقدارو یه تو حساب من ریخته باشه چرا شک در استفاعت رو آیان میگن مجرای براعته شک در آب رو در بابو گذو بگن مجرای احتیاطه این نقطش اینه یعنی پس بنابراین اینطور نیست که در اصول لحاظ نباشه اصول کلا لحاظ نباشه بله چیزی که هست من منعز کردم در بعضی از اصول شما تصرفتون مختصره یعنی چی؟ یعنی میگه انجام بده انجام نده این نقداره و یعنی فی ای؟ این فیض هم براکن فرمود دف اندش شوده دف یعنی یه نفر این شبهه واقعه قف اندش شوده فعلا موقوف اندش شوده خیلی روند من ال چون شون احتمالی احتمال اعتراف در حال کرد اما یه دسته میگه فعلا که کن تعلو یادین من وضوعه ولیس دگه تنو گزری یقینی نشد دقت بکنید در فائده شما میدینید می این اقا داره تصرف میکنه تصرف رو به منزله ملک قرار میده سوق و رو به منزله تکیه قرار میده پس بنابر این در اصول عملیه در تمام اصول عملیه لحاظ هست لكن اونجاهایی که مخرج لحاظ شدیدتری میخواهد. به مجردی یک مثلا کار کوچکی قبول نمیکنه مثلا میگه تصرف بکنه ولی اضافه تا شک کم کردن اصل اولی رو برای این قرار میدن که اون ثابت میفستن کنه اون حالت رو نداره باید یک دلیل قبی بیاد و هم ما در اصول غیر محرزم الان برای تو شد اونم لحاظیش فهم رو کنه لیکن چون نتیجه که از اصل فقط اصل، فقط عمله فقط توقف یا انجام دادن یا ندادن، در او دقت بیشتری نمیخواد ره اصول به نظر ما اصلا مریار در اصول عملی وجود لحاظ است. و اما مسئله اینکه این تعبد باشیم مال محفظ غیر ما بزودن و اما مسئله تعبد انساب قضیه به نظر ما نقطه ای نداره و استصحاب یک فهم اغلایی داره به نظر ما در زندگی اغلایی ما موجود داره در سیر قضایی ما این هم کلام در تحلیل این سیره یک کسی تحلیل میکنه سیره به اماریتی که توضیح توشک شد یک کسی تحلیل میکنه سیره به اصل عملی که این هم با مثالی که اون روز ارز کردم تا حدی روشن شد مثل آقای خویم تحلیل روشن به اماریت حد درست اماریتی که جمعه حکایت نداره ایشو اینجور مهم میکنن نه اماریت سیره توی نه اصل عملی رو صرف می دونم ما به نظر ما اینکه ایشون از اصل عملی گرفتن بالا یا که اصل عملی توی جمعه احراز ندارد جمعه تنظیم ندارد نه این یک یعنی نوع توسعه یقین است بقاان حقیقت اصطحاق این توسعه رو نفس ابداع میکنه. پس اینی که ما این رو اغلاعی قرار بدیم و این باشه که بگیم کش لحاظ نیست این هم واقعیت نداره. به نظر ما در فهم هم همون جنبه لحاظ آمده هیچ فرقی با جنبه شرعیش نداره در جنبه عقلایی به نظر ما اصل استصحاب اصل عملی محرزه هیچ فرقی با انقضاء باشه اینی که در جنبه فهم عقلایی اصل اماره باشه مطلقا یا اماره که جنبه هکار نداره این یک تثیر روشن از فهم عقلانی این هم به این مکلن پس بنابراین روشن شد حق در مقام این از که در اصول کلن لحاظ وجود داره هیچ فرق نمی کنه و باید لحاظ بشه اما انتظا نیست اعتباد و سالالله آقا این آثاری که داره که از اجزا باشه تو بحث اجزا زبابتشو گفتی اینجا از یک زابی هست اونجا از دیگری بود